قاعده این است. پس از تو ما گریه کنیم و سفر را به تاخیر بیندازیم و روی شیشه های پنجره اندوه را روی کاغذ سفیدی بنویسیم و شیشه های پنجره را سیغل دهیم. بر پشت اسبان کاه های سخته گندم های مرده را بگذاریم و گندم های مرده را در کنار آسیاب های فرسوده هم کنیم. ما به دنبال پناه بودیم. سلام علیه سخاوتی هستم با برنامه هفتم پادکست 822 امروز یک شنبه 29 اسفند 1395 با توجه به فرارسیدن سال نو و برسولت اید و شادمانی که در پیش من توصیح میکنم به این پادکست بعد از تعطیلات گوش بدیم که تعطیلاتتون خراب نشه دهید شمیه که این یکی دو روزه اصلا توی موده خوبی نیستم نه اینکه که قبلا بودم و چیزهایی که میگفتم خیلی مسرت بخش و شادی آور بود ولی این پادکست ممکن است پادکست های دیگه میزان انرژی منفیش بیشتر باشه اونم به خاطر اینکه که منعکس کننده حال احوالات خودمه دلیل اینم که امروز یک شنبه دارم اینو ضبط میکنم و نه فردا اینه که فردا روز اول ساله و ممکنه، به دلایلی که تقریبا همه ممکنه گرفتارش باشن فرصت زبط این پادکست رو شته باشم. این مشکل ساختاری هم من اینجا پیش اومده که من به خودم و به شما قول دادم که هر دوشنبه یه برنامه منتشر بکنم و همه تلاشمو دارم میکنم که سر قلم بمونم. خب طبیعیه که بعضی از دوشنبه ها یا بعضی از هفته ها، رسی که حرف بزنم حتی با خودم رو ندارم چه برسه به اینکه با صدای بلند حرف بزنم و همه بشنون. دقیقا مثل سال نو مثل اینکه ما هر سال در یک زمان مشخص یعنی اولین ثانیه اولین ماه فصل بهار قرار جشن بگیریم یک جشن بزرگ بزرگترین جشن و عید ملی ماست تا جایی که من میدونم عید نوروز ولی خب از این هفتات هشتاد میلیون نفری که حالا صرفا تو کشور ما این عید رو جشن میگیرن شاید ادهی زیادیشون در اون روزها تو مود جشن گرفتن نباشن و و یه روزای دیگه ای رو آغاز سال نوشون دوست داشته باشن بدونن چرا همه چرا همه 80 میلیون نفر باید زمانی که تقویم به ما میگه سال نو شد و از 1395 رفتیم به 1396 خوشحال بشیم شروع کنیم به جشن گرفتن و توی مود جشن و شادی باشیم اگر اگر این نشانه بهاره و نشانه زنده شدن طبیعت ولی طبیعت هم اینجوری نیست یعنی شما به درخت‌ها اگه نگاه بکنیم همه درختا در یک زمان بیدار نمیشن برگ و شکوفه نمیدن بعضی از درختها حتی توی یه منطقه بعضی از درختها با اختلاف یه ماه با همدیگه امکان داره سبز شدنشون اتفاق بیفته در مناطق آب و هوایی مختلف که الحمدلله ما در کشورمون تعدادشون رو کم نداریم این که دیگه خیلی عجیب قریبه یعنی شما امکان داره بسط زمستون یه جایی بریم که مثل بهار باشه امکان داره اواخر تابستون یه جایی بریم که مثل زمستون باشه خب وقتی ما همچین جایی زندگی می کنیم و یک همچین تنوع آب و هوایی داریم چجوری ممکنه همه در یک زمان خاص شروع کنن به جش گرفتن و احساس شادی بکنن مگرین اینکه این یه قاده ای باشه ساخته دست بشر، ساخته ذهن بشر که ما هزاران سال بهش متحد مونیم، چرا به این قاعده متحد مونیم؟ چرا به این اصل به این توافق بشری به این سنت متحد مونیم و به خیلی سنت های دیگه متحد نمونیم؟ سه هزار سال من دو هزار ساله چقدر دقیقش اصلا مهم نیست. مردم ایران زمین، افتخار میکنم به این که عید نوروز رو در اولین روز بهار جشن گیرم. چرا اولین روز بهار؟ و, و شاید یه روزی برای یه ادهی در دو هزار سال پیش که تعداد جمعیت شهرشون یا روستاشون صد نفر، هزار نفر، صد هزار نفر بوده این منطقی بوده که اینا جمع بشن، یه،, یه سنتی داشته باشن یه گرده همایی داشته باشند و شکوه زندگی اجتماعی و تواف... زنده شدن توافقات اجتماعی رو در یه همچین سنتی متجلی بکنن این خیلی منطقی بوده به خاطر اینکه کامیکیشن اون موقع به شکل امروز نبوده قضا به شکل امروز نگهداری نمیتونسته بشه و خیلی دلایل دیگه که من نمیدونم اینا بعد در یک زمان مشخص قراردادی جمع می شدن دور همدیگه که حس کنن به یک جامعه به یک شهر به یک کشور تعلق دارن و این سنت توافقی اینا رو به همدیگه گره می زده. ولی آیا امروز هم همینه؟ به جز اینکه تعطیل شدن 80 میلیون آدم در یک روز خاست به مدت دو هفته، تعداد زیادی تلفات جاده‌ای به بار میاره به خاطر اینکه همه اینا از شهر خودشون میخوان فرار کنن برن یه جای دیگر رو ببینن یا برن یه جای دیگه که آب و هواش بهتره این دیوانگی محض نیست که ملت یه کشوری که 80 میلیون نفرن در یک خودشون خودشونو تعطیل بکنن و بزنن به جاده و بعد برای یک شب همه شروع کنن برن ماهی بخرن خب مگه ما چقدر ماهی میتونیم سید بکنیم پرورش بدیم توی فریزر نگه داریم و بعد میده بخرن خب چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که میافته توی سوپرمارکت ها توی قاببی ها و توی فروشگاه ها و دستفروش های کنار خیابون می که چقدر آشغال به خورده مردم داده میشه آشغال هایی که معلوم نیست کی تولید شده چهجوری تولید شده همش تولید انبوه شده و حالا به فروش انبوه میرسه به خاطر یک سنتی که سه هزار سال پیش یه کاربردی داشته. ولی حالا شاید کاربورد نه باشه شاید مثل همین صفری هفزین در یک زمانی انسان ها نیاز به یه سری سمبول داشتن مثلا اینجا روی ویکیپدیا نوشته هر چیزی که روی صفری هفزینه باید یک کلمه پارسی باشه این احتمالا به خاطر این بوده که ملیگرایی فارسی زبانان رو تبقیت کنه فقط یک کلمه باشه و بعدم خوراکی باشه احتمالا اون موقع مثل الان غذاب وفور نبوده تونستیم امتونستیم بینید خیابونتون غذاب خریم سیر نشانه یه چیزی بوده سبزه نشانه یه چیزی دیگه بوده سیب همینطور سمنو همینطور و بعد کسانی که این چیزا رو میذاشتن روی صفرشون همون چیزایی بوده که میخوردن هر روز همون مواد غذاییشون بوده. نمیرفتن از دست بروشه. کنار خیابون سنجد بخرن آدم امروز چجوری میتونه درک بکنه که سنجد نماد دلبستگی برای اونه؟ اگر شما در طول سال گذشته دلبستگیتون رو به کسی نشون ندین، چجوری سنجد میتونه دل... میزان دلبستگی شما رو تغییر بده؟ اگر در طول سال گذشته فقط آشغال خوردید، چطور سمنو میتونه نشانه بارور شدن گیاهان فراوانی خوراک و غذاهای خوب و پرنیرو برای شما باشه؟ اگر در سال گذشته از کسی پرستاری نکردین اگر تولید نکردین اگر یه مفهوم یه بزر یک انسان رو بارور نکردین سیب چجوری میتونه نماد بارداری و پرستاری برای شما باشه. به اینکه این که هشتاد میلیون نفر هشتاد میلیون سیب هشتاد میلیون زب در چه میدونم 300 گرم سمنو 50 گرم سنجد یه لیوان سرکر رو حروم میکنید سماق نشانه باران است خب که چی چرا ما سماق. اصلا چه نیازی ما به این سیمبالیزم داریم الان و بعد جالبتر از اون در ادامه میاد که سکه کلمی تازیه سپند خوراکینی سبزی پلو ترکیبیه و, و چیزای دیگه اصلا چرا ما به عنوان اولین ملتی که سال نوش رو کاستمايز میکنه به بقیه دنیا افتخار بکنیم هر هر کسی هر خانواده هر گروهی که میخواد نیاز به تعطیلات داره دو هفته در ابتدای سال میتونه بسته به یعنی با کمک یک نرم افزار ملی که کد ملیتون شما اونجا وارد میکنید در طول سال یک گروه سال نوی خودشون رو تعیین بکنن که چه زمانی میخوان به مدت دو هفته تعطیل باشن و به عنوان تعطیلات سال نو از, از این زمان دو هفته استفاده بکنن اینجوری نه جاده ها شلوغ میشه و ظرف مدت دو هفته یه چند هزار نفری میمیرن تو تصادفات و نه میلیون ها تون خوراکی به دور ریخته میشه و نه, و نه یک بیزنس بازار سیاه پرتغال و سیب و ماهی و گوشته که فقط و فقط به سطح آشغال سازیه میشه شک میگیره که یه عده ازش منتفه بشن و یه عده زیادی یعنی یک ملت ازش متذرر دیگه کسی دیگه یک بیزنس نمیتونه پیش بینی بکنه که یه عده زیادی امروز فرداب وسط تابستون شروع سال نشونه. هر کسی نمکنه سورپرایز بشه و این توضیح میشه چرا ما نباید توضیح کنیم همونجوری که خیلی از کارهای بوروکراتیک مون رو توضیح می‌کونیم مثل تجدید کارت ملی شناسنامه گرفتن کارت سوخت سند زدن قدر و هر چیز ای که میتونست یه زمانی در گذشته به شکل متمرکز انجام میشد و کلی ترافیک ایجاد میکرد ولی حالا به شکل توضیح شده هر کسی در محله خودش میتونه انجام بده چرا تعطیلات سال نو نباید توضیح شده و کاستومایز باشه چرا من نباید هر زمانی که دلم خواست سال نو شروع من که یک سیاره نیستم کنار دوریت سیاره دیگه بچرخم و بر اساس اون گردش اجباری زمان بهار من ست بشه. من شاید بخوام وسط اردیبهشت سال 9 شروع بشه. یا ترجیحاً اوایل تیر که میوه‌های خوشمزه تابستونی زیاده. یا آخر پاییز که اکثر میوه‌های تابستونی اون موقع رسیده. من میخوام پنجم شهریور ابتدای سال نوم باشه چه اشکالی داره؟ بدون صفحه هفزین بدون اینکه نیاز باشم برای اجرا کردن سنتی هزار و از تولیدات انبوه کسایی که حتی کوچکترین فکری در مورد تولید کردن اونا نکردن بخرم. اینجوری دیگه کسی نمیتونه به من مسخره ای بده که من در یک هفته گذشته دریافت کردم هدایه تبلیغاتی سال نوم امده این هدایه رو سررسید تشکیل دشک... میده سررسید من نسبت به این سررسید حساسیت دارم هنوز در سال 1396 شرکت های خیلی زیادی هستن که سررسید چاپ میکنن و لوگو اس شماره تلفن، آدرس خودشون رو روی جلد پلاستیکیش حکم میکنن و در آخر صفحه های کاغذیش اطلاعات مربوط به اندازه گیری تیراهن مسافت بین شهرها شماره تلفنهای ضروری و از این چیزها انوز هست اگر امسالم به چشم خودم ندیده بودم باورم نمی شد فکر می کردم که این دیگه حصل شده از تاریخ ما از فرهنگ ما چند میلیارد اسمس بعد قبل از سال نو آغاز سال نو رو پیشا پیش به شما تبریک بگه بانک اپراتور تلفن همراه و هر بیزنس دیگه ای که شاید شما ازش یه وسایل خونه خریدید و شماره تلفن شما رو گرفته بدونین که بدون شما کی هستید چی هستید حالا احوالتون چیه برای شما یک SMS میفرسته و شاید هم یه هدیه از یه کارت تبریک گرفته که اسم شما توش پری روی برگ کاغذ پرین شده با یکی دو به چر و یکی دو تا جمله کلیشه و وسط کارت تبریک چسبونده شده تا سر رسید. یه قابم من گرفتم که نمیتونم بگم محتوشیه توی پادکست ولی یه قابم هست که شما میتونید به دیوارتون بزنید ولی من استفاده برش البته ندارم این, این حدایی بدون فکر این mindless gifts که بجز تولید و ارسال و بعد دور ریختن نیست چه زمانی ما به عنوان یک ملت میخوایم اینو متوقف کنیم. چرا به عنوان سنت؟ ما بعد بریم دید و بازدید کسایی که در طول سال با هاشون دید و بازدید نمی کنیمیم معاشرت نمی کنیمیم. این سنت این ای چه چیزی رو تغییر میده؟ به جز اینکه چند هزار سال دیگه ما رو متوقف می از از اینکه خودمون برای خودمون تعطیلات خودمون سرگرمی خودمون و نو شددن خودمون فکر بکنیم اوکی یه ادت دو هزار سال پیش تصمیم گرفتن که آغاز فصل بهار آغاز نو شدن نمیدونم هر چیزی هست ولی شاید این دیگه الان برای ما مناسب نباشه شاید این برای همه کار نکنه همون جوری که صد سال پیش یه ایده فکر می‌کردن اگر کسی عروسی بکنه از خانواده داماد بعد یه نفر پشت در وایسه و یه دستمالی رو آغشته به خون بگیره خیلی زود این این سنت دیگه نیست تا جایی که من فکر نمی کنم دیگه یک درصد هم کسی اینو اجرا بکنه همونجوری که تا 20-30 سال قبل یه سنتی وجود داشت که بچه ها به پدر مادرشون احترام میذاشتن ولی چقدر این سنت الان اجرا میشه و حتما, حتماً کار بردی نداره چطور یه سنتی که 2000 سال پیش سال نوعی ما رو تعیین میکنه و اینکه چیکار بکنیم چه صفری بچینیم هر سال با آب وتاب بیشتری اجرا میشه و من به عنوان یک واقعیت هم در مورد خودم و هم در مورد خیلی آدمایی که به شکل فردی باشون صحبت کردن میدونن که اینا لزومن از این تعطیلات و از این جشن و سرور لذت نیبرن واقعی بزرگی اونجوری که تلویزیون نشون میده نیست چرا باید دقیقا شنبه آخر سال بریم به زیارت اهل قبور من پدرم رو تقریبا سی سال پیش نه تقریبا چهل سال پیش از دست دادم و تقریبا سی سالی که به یعنی به زیارت قبرش نرفتم آخرین باری که رفتم بچه بودم یادم نیست من چرا نمیتونم پدرم رو یا هر عزیز دیگری رو که توی زندگی از دست دادم توی, توی پادکست همون که نشستم یاد بکنم. چه روزی میداره با راه انداختن یک ترافیک وحشتناک و موندن ساعتها در ترافیک پنجشنبه آخر سال بریم به زیارت تعلق قبور چند تا دیگه از این مثال ها میشه زد این مرز بین احترام به مرده ها به اونها که دیگه بین ما نیستن و احترام به زنده ها خیلی مرز باریک و در این حال قابل تعمالیه چهارشنبه سوریه امسال چیزی که خیلی برای همه من فکر کنم قابل توجه بود کم شدن خیلی زیاد سر و صدای ترق و بمب و چیزهای انفجاری بود که نسبت به ساله قبل به شکل خیلی خیلی زیادی ملموس بود و تا جایی که من میدونم این به خاطر احترام گذاشتن به آتش نشانایی که در حادثه ساختمان پلاسکو جون خودشون را دست دادن در این حال که این این پدیده، این،, این رفتاری که اتفاق افتاد بسیار قابل احترام و قابل تحسین هست در این حال خیلی هم به فکر فرو برد که اگر میشه به احترام از دست رفتن جون چند اتش نشان یه همچین تبگیر خیلی رادیکالی در یه سنتی که سالیان سال دیگه که تقریبا هیچ که نمیدونست که باید باش چیکار بکنه با موزلاتی که داشت از و پاهایی که قطع شد ساختم اونایی که آتیش و سر و صداهایی که گوش یک ملت رو به مدت چندین روز کرمی کرد وقتی با یک همچین اتفاقی و همچین نیتی که احترام به اونا بوده میتونه یک سنت کمی اصلاح بشه یا خیلی زیاد اصلاح بشه چطور احترام گذاشتن به اونایی که زنده هستن اتفاق رو ایجاد نمیکنه مثلا اونایی که زندن و این ترق که منفجر میشه خیلی روی روح و روانشون ممکنه اثر بذاره و آرامششون رو از بین ببره کسانی که زندن و این تقا های امکان داره زخمیشون بکنه یا حتی باعث مرگشون بشه کسانی که زندن و حجوم به جاده ها سالانه چندین هزار جونشون رو می گیره رفتن به تعطیلات و بازگشت از تحتیلات موجوداتی که زندن و سنت های بازمانده از چند هزار سال پیش باعث میشه که دیگه ظرف مدت کوتاهی زنده نباشن مثل ماهیای قرمز یا مثل سبزه هایی که دوریخ نمیشن یا مثل درخت‌ها و شاخه و سبزه ها و رودخونه هایی که در مراسم 13 در, در که من میتونم اسمشو بذارم یه, یه استمپید ملی استمپید به به یورش معمولا اسب و گاو و اینا مگه اشتباه نکنم در انگلیسی اطلاق میشه خب وقتی 70 میلیون نفر برن توی فضای طبیعی محدود یک کشور خشک که بیش از 2 سومش بیابونه خب خیلی صد زدنش سخت نیست و بررسی اتفاقات تا سال گذشتش هم سخت نیست بر روی بر اساس تصاویر و خاطرهایی که خودمون ازش داریم آیا به این چیزهایی هم که زنده هست میشه در یک سنتی احترام گذاشت و بعد از همه به وقت و زندگی خودمون من, من خودم اگر بخوام به خودم احترام بذارم ترجیح میدم در تعطیلات نوروز از خونه بیرون نرم یا از شهرم بیرون نرم چون همه چیز سبرابر برابر قیمته همه چیز کیفیتش یک سوم اگر یک دوم نباشه و همه چیز به طرز عجیبی شلوخ بلوغ و در هرج و مرج به دست میاد من اگر به زندگی خودم به زنده بودن خودم به سلامت خودم اهمیت بدم چرا نباید به جای اول فروردین که مرز بین زمستون و بهاره، و خیلی از جا آب هوا تغییر میکنه بارون میگیره برف میگیره جاده ها میشه و اگر شما مکان اقامتی درسته بینه اشته باشین مثل خیلی که توی چادر میخوابن امکان داره بارون بیاد روی چادرتون و شبون توی یخ بزنید من اگر به خودم احترام بذارم چرا نوید تعطیلات سال نومو کاستومائز بکنم وسط اردی بهشت یا توی خوردات برم من اگر به اون چیزایی که زندان احترام بذارم چرا چرا چرا باید آتیش روشن بکنم چه چاشم بسوری چرا هنوز باید زردیمو بدم با آتیش و سرخی از آتیش بگیرم در جایی که اکثر شهرهای بزرگ آلوده است و یه دونه آتیش روشن نکردنم من فکر میکنم میتونه کمک کننده باشه بذافه اینکه حالا اون آتیش مگه با چی روشن میشه یا با کاغذی یا با چوب مگه ما چقد چوب داریم که بازم بسوزونیم و چقدر آسمون شهرمون میتونه هنوز دود تحمل کنه و مردم شهر چقدر دیگه باید دود بخورن زردی شاید مال زمانی بوده که مردم هفتهی دو بار غذا میخوردن ولی وقتی ما روزی پنج بار میتونیم غذا بخوریم دیگه زردی در کار نیست همه از شدت اضافه وزن دارن زرد میشن چه روزو میداره آتیش درست کنیم از روش پت بریم. این چه سنتیه؟ سنتی مثل شب یلد <تص> کاستومایز یعنی هر چند نفر جمع میشن تو یه خونه باعث ترافیک احتمال زیاد نمیشه باعث خلوت شدن شهر میشه چون تو آخری شب میمونن و هر کی به شکل رندوم در یک ساعتی جایی رو که مهمون هست ترک میکنه فکر میکنم اثرات مخرب زیست محیطی شب یلدا نسبت به عید نوروز قابل صرف نظر باشه ولی عید نوروز تعطیلات عید نوروز یه فاجعه زیست محیطی یک فاجعه فرهنگی و یک فاجعه انسانی در این کشور از مواد غذایی، سو مصرف مواد غذایی بگیر تا کسایی که توی جاده کشته میشن و هر جمرجی که به خاطر تعطیل بودن یک ماه قبل از عید تا یک ماه بعد از ایدن در کل ابعاد کار و زندگی مردم به وجود میاد ایدن روز یک فاجعه است برگزار کردن سنت چند هزار ساله ای ایدن فاجعه سید روز به تنهایی خودش نمیتونه فاجعه باشه. یه, یه پدیده‌ای که اتفاق میافته زمین به دور خورشید به جای میرسه که نمیدونم چند دور یه،, یه یه مسیری کامل میشه و یک سال میگذره. من اطلاعات ستاره شناسیش رو ندارم. چه لزومی داره که ما این همه فشار بذاریم روی منابع طبیعی به خاطر اینکه یه سیاره‌ای دور یک ستاره‌ای به اندازه مشخصی چرخیده به چه دلیلی و بله یک ریاضیدانه بسیار باهوش با افتخار ایرانی هم اینو کشف کرده دمشگر آیا میتونیم در سکوت یک دقیقه بهش افتخار بکنیم یا هرچالد درمون خواست چه لزومی داره که سبزی سبز کنیم و ماهی بذاریم روی سفره. بشر امروز که دسترسی به این همه اطلاعات و این همه کامینکیشن داره و اصلا وقت نداره که سمبولی رو بهش احترام بذاره و به, به خودش حتی به اندازه کافی توجه کنه چه برسه به دیگران چه برسه به سمبول سیب و سیر و این سنت واقعا چه یه نفر به من میگه چه معنایی داره من نمی فهمم اینو اصلا مشکل منه یه نفر لطفا به من بگه که سنت عید نوروز چه معنایی داره در سال 1396 کاملا کاملا قابل درکی که شما بخواید یک آوانبار در شهر قزوین یا یک مسجد در شهر اصفهان یا یک کاروانسرا در شهر یزد رو از نزدیک ببینیم خیلی میتونه الهام بخش لذت بخش و مفرح باشه این،, این گردش ولی این اتفاق چرا دقیقاً باید توی دو هفته اول بهار بیفته کل سال مال ماست به اضافه اینکه که در کل سال ما نشون میدیم که کل سال مال ماست به شکل یعنی در قالب تحتیلات ما تنها ملتی هستیم که از هر تعطیلاتی استفاده میکنیم که بریم جاهای دیگر رو ببینیم و تعطیلات کم نداریم با این همه تعطیلی و با این همه فرصت برای گشت و گذار آیا زمانش نرسیده که این دو هفته تعطیلات اید نوروز رو یا تعطیل کنیم یا یه تغییر شکلی بدیم میگم به عنوان اولین ملتی که تعطیلات سال نوع دارن اینو میتونیم ثبت جهانی بکنیم و آیندگان به ما که در این عصر میزیسته ایم افتخار بکنن همون جوری که ما به ایرانیانی که دو هزار سال پیش ایدن و روز رو ابتاع کردن و صفری هفتیم رو داریم افتخار میکنیم من مطمئنم خیلی ها در نسل های بعد ایمپریس خواهند شد و به ما افتخار, خ... افتخار خواهند کرد و خیلی از کشورها از این نوآوری پیروی میکنن و به دنبال ما تعطیلات سال نوشون رو به شکل کاستوم برگزار می میکنن در هر صورت من فکر کنم که ایدم رو تونستم در مورد تعطیلات سال نو و اید نروز در این پادکست منتقل بکنم شعری که اول پادکست براتون خوندم از احمد رضا احمدی. شعر, شعر بسیار زیبایی همه شعرهاییشون خیلی زیباست من دوستم و خیلی برام الهام بخش بودن شعر به خصوص اون تیکه آخرش که گندم های مرده را در کنار آسیاب فرسوده ام باشته کنیم صحبت گندم که شد من هفته گذشته بالاخره از آقای تاهری که شخصیت بسیار قابل احترامی هست برای من ایشون رو ملاقات کردم و در یه نمایشگاهی ارزی محصولات ارگانیک آرد گندم خراسان گرفتم گندم خراسان از گونه های بومی گندم ایران هست که خواست خیلی زیادی ظاهرن داره و به این نام در سراسر سر دنیا شناخته شده است آی تاهری این گونه رو از معرض انقراز نجات دادن و نیم کیلو گندم رو چند سال پیش از یه فرد فرانسوی به ایشتباه نکنم گرفتن و ایران آوردن و الان رسوندنش به چند تون تولیدش رو و میتونن دیگه با خیال راحت این گندم رو و محصولاتش رو بفروشن که دارن همین کارم میکنن اسم مجموعهشون رو اسم بیزنسشون رو گذاشتن کشاورز نانوا که برای من خیلی جالب بود و من فکر میکنم این ترندیه که در آینده یعنی روندیه که در آینده ما خیلی زیاد خواهیم دید یعنی امکان داره به هیچ چیزایی دیگه هم اضافه شه مثلا کشاورز، نانوا آشپز، معلم مهندس، دکتر یعنی دیگه ما در زمانی زندگی کنیم که کشاورز به تنهایی ارزش شفصوده کافی ایجاد نمیکنه و حالا کشاورز، نانوا کسیه که میدونونه چی تولید میکنه و چه گندی رو چجوری تولید کنه و چجوری آردش بکنه. اینا این گندم رو با آسیاب سنگی آسیاب میکنن و همه خواستش درش حفظ میشه چیزیش رو از هیچ چیزی جدا نمی نمیکنن. من بالا فاصله بعد از اینکه این, این آرد رو آوردم خونه خیلی ایجان زده بودم و یک مقدار خمیر درست کردم فردا که این اون رو پختم انصافاً میتونم بگم که، بی نظیر بود یعنی رنگ عطر و مذه این خیلی خیلی عالی بود که من تا زیادی این رو من فکر میکنم مدیون اولا گونه گندمش هست و بعدم نوع آسیاب شدن و آردش در ساعت دوست داشتم توی این پادکست احترامی بذارم به آقای احمد تاهری که این پروژه بزرگ رو بدون این که از جای فاند داشته باشن بدون اینکه خودشون رو کارافرین خطاب بکنن طرح توجیه بنویسن و با بدش وام بگیرن از جای حمایت دولتی و غیر دولتی داشته باشن با, با حمت خودشون و دوستانشون یه همچین کار خیلی خیلی بزرگی رو از نظر من بدون هیچ ادعای انجام دادن. و امیدوارم به زودی وبسایت و کانال تلگرامشون را بیفته که هر کسی که علاقنده به خرید این گندم یا آرد و محصولات دیگه که دارن مثل ن اینا، بتونه راحت پیداشون کنه و باشون, باشون در تماس باشه در هر صورت من برخلاف توصیه خودم در مورد کازتمایز شدن تعطیلات ایدن نوروز این پادکست رو هر هفته تلاش میکنم ضبط کنم اگرچه بعضی از هفته ها مثل این هفته ممکنه مود خیلی خوبی توش نهشته باشم ولی این به نوعی نشون میده که من یعنی به نوعی وضعیت من رو در هر زمانی که نوبت ضبط این پادکست میرسه نشون میده و من مجبورم که منتظر نمونم تا حالم خوب شه و خیلی چیرفول باشم که این پادکست رو ضبط بکنم این خودش میتونه مثل, مثل یک ریچوال مثل یک چیزی که سری یک زمان شما چه دلتون بخواد چه نخواد باید انجامش بدین شما رو وادار میکنه که مثلا سو دستورتونو بهشون و خود این اجبار شاید تاثیر مثبتی داشته باشه شاید این اجبار برگزاری تط... مراسم جشن عید نوروزم به نوعی همین فلسفش شما چه بخواین چه نخواین چه تو مودش باشین و چه نباشین خونه تکونی میکنید سفره هفت سین میچینید لباس ترتمی سر و دید و بازید کاری که اگر به اختیار و انتخاب گذاشته بشه شاید در طول سال هیچ کسی انجام نده و این یک اجبار فرهنگیه که یه تکونی به همه آدم بده نمیدونم این, این نیمه پر لیوانه حدث میزنم یه اده در کامنت این پادکست که در روی وبلاگ من علیستخواتی.com میتونید بنویسید یا در به آدرس 822 علیستخواتی.com بفرستین حدث میزنم یه می نویسن مینویسن قسمت, قسمت پر لیوان رو و اتفاقا خیلی هم خوبه من کنم که تعطیلات یا اصولا مراسم عید نوروز هیچ خاصیتی امروز دیگه نداره. چیزی که من میگم اینه که مذراتش و خرابی که به بار میاره حدس من اینی که خیلی بیشتر از فوایدشه و نیازی نداره ما اینو حذفش کنیم. میتونیم میتونیم با تکنولوژی که امروز داریم میتونیم با فکری که امروز داریم با طراحی که میتونیم امروز بکنیم و مردم دو هزار سال پیش نمیتونستن میتونیم عید نرووز رو به شکل بهتری برگزار بکنیم. طوری که کسی تو جاده کشته نشه کسی آتیش نگیره چشش کور نشه هزاران هزار ماهی قرمز نمیرن، یا اصلا زنده نشن و برای صفری هفتین بمیرن هزاران تون گندم دور ریخته نشه هزاران تون میوه در بازار سیاه نره سرد خونه و بعد بدون کیفیت دست مردم برسه ماهی هم همینطور سایر مواد غذایی سنجد سماغ نمیدونم یه سه دیگه که مثلا لوازم صفری هفتین این چیزهایی که هر سال یه اده باید برن از سر خیابون بخرن به شکل توریستی عرضه نشه و اگر کسی این چیز رو نیاز داره بنابراه اهمیتی که میده اه، سمبولهای خودش رو تعریف کنه و روی سفره یا هر جایی که دلش میخواد بذاره و از اون سمبولهای الهام بگیره این همه چیزی که من میگم قاعدتا ش... یه دن باش موافق نیستن و این کاملا قابل احترامه. امیدوارم این پادکست رو بعد از تعطیلات بعد از جشن و سرور سال نو گوش بدید گوش داده باشید چون اینجا آخر پادکسته اگر چیزی دارید حرفی دارید میتونید به 822 طلی بفرستید تا دوشنبه هفته بعد فز.